بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی و علی سید و محمد والد تاهری و لعنت الله علی عدوه هم اجمعی من بروز بر این ساعتی که مضاحمه اغاق شریف دو حسن نو کار تیران خم عرض بکنم انشاءالله مفید باشه و باعث خسران نباشه نکات پیرامون بایسته های پجوهش های رجالی اولا بگم منظورم از رجال چی؟ رجال به عنوان یکی از متد های اعتبار سنجی و نه به عنوان همه متود نه مواقص دیگری هست به خصوص امروزه مقارنه کتاب بحث های باستان شناسی که بازند انجام میشه وارد محتوا عصب شناسی در اعتبار سنجی نه اینها مباحث مفید و سودمندی است ولی متوقف از نگار انتشار همون سنتی است تقریبا بخشی از متد های اعتبار سنجی منظورم تو پژوهش های رجالی سه تو مرحله را باید توجه داشته باشیم یک بحث های کلیات رجالی سال این ها به عرض کنم دو بحث های مفردات رجالی که امروزه البته ها رو دویمه اصلایی کمی بهتر شده، ولی تا ده بیست سال اخیر اصلا همه بحث رجال خلاص مفردات محمد ابن سنا سقتون املا این تمام بحث رجالی تا روزگار معاصر همین و بحث سوم بحث sanat شناسی این بحث ها ستاش مهمه و بی‌توجهی به هر کدام از اینها اون نتیجه ای که ما در بحث رجالی دنبالش هستیم برای اعتبار سنجی ناقص میده یا اصلا خراب میشه یه نکته مطلعی از بکنم این هر تو اعلامی که رجالی هستن بعضا بعض از, بعض از این محور ها قفلت شده است یا این که ما شخصی را رجالی میدونیم به این معنا نیست که در آثارش به هر سه محور را نکاتی پیدا کنیم نمونه بارزش من خوام آقای بروجردی شاید به عنوان این که از بزرگترین رجالیون معاصره من مقام اثبات ایشون را دارم میکنم مقام صحبوت را نمیدم از عظمعرفهم آقای بروجردی در مورد مفردات رجالی مون خیلی اطلاعات کمی دارید و معلوم محمد بن سنا سبع است نه سهلت نضیا سبع است نه بیشترین بحثی که از مرحوم آقای بروجردی منتشر شده یا در تقریرات شما اینکه چه بحثای سندشناسی همین جور نسبت به صاحب معاله من صاحب منتقل جوما بحث‌های سندشناسی از ایشون مشهور شده حالا اینی که ایشون در مفردات کار کردن یا کار نکردن یه بحث دیگری ای. ولی این که شخصی به عنوان رجالی مطرح شده است به این معنا است که در هر سه محور کار کرد و هر کدام از این محورهاد استعداد خاص خودشان خواد بخصهای صندت شناسی یک ممارسته و حافظه قریز بخصهای کلیات نیازمنده تحلیل‌های صاحبه و این قاطع توقع نباید باشیم اگر مرخوم آقای بروزاری در بخص صندت شناسی نابقه ایست که آقای خارقه حتما آدو که در مفردات ارز می کنه بابل اختی بالا من این ستم اخبرو به ترتیب خدمت به نکاته عرض می در مورد کلیات که اصلا بخص است. و به یک معنا اگر بخواهیم کلیات مرتب و منظم و مدون مد نظر نوشه متقابل از کتاب کلیات علم رجال آقای اصلا کتابی نده نکات پراکنده هست مرحوم وحید بهبهانی در مقدمه منحج مقال نکاتی داره لوبولو و آبادی نکاتی داره مقدمه منطقه مقال ابو علی حائری نکاتی داره مقدمه مرحوم آقای نکاتی داره ولی اینکه دوره کلیات مثل بحثای اصول فقر ما در ممکن است ما در قبل از جناب شیخ تورسی بحثای اصول فقر به صورت پراکنده ببینیم در بین کلامات اصلا اما اینی که بگیم اولین کتابی که سفتا صد مواحظ اصولی را پرداخته باشه حالا کار به قوت و زفت مطالب نداریم یک عدت طول اصول مثلا منظور از پل یاد یه چیزی در این ماهی هاست و الا خیلی از این مواحظ مثلا در مشاهیخ ابن نبی عمر خواهی در قطع تل و سول مرخوم شیخ اومده و بعضا تو دوره صفایی بهش تمسک شده یا استثناء و عدم استثناء مشاهیخ جناب محمد ابن احمد ابن ایخیای این در دوره صفاییه و این یعنی بار به عنوان آهده مطرح شده ولی ما در تا دوره معاصر کتابی که سفقا صده حالا نمیشه برو. ولی نسبتاً تدمین قابل قبول و مباحث مهم رو در برداشته و شهست سراح نداری علاوه بر اون که خیلی از تو همین کتاب آقای هم خیلی از مباحث میبینه هنوز درست مورد توجه قرار نگه البته بعد از ایشون چرا؟ خیلی از مباحث مورد توجه قرار گرفته ولی هنوز به صورت جدی نیازمند کار هست و بحثایی مثل کتاب شناسی قبل از دوره معاصر بحثایی کتاب شناسی چندان نداریم تفسیر ما حسن عسکری یه قول ابن قضایری مثلا داری. کتاب سلیم ابن قیس قول ابن قضایری داریم اصل زید نرسی یه قول ابن ولیدی در همین حرف همین در حد 200 یک پاراگراف کم تر. اما این که وارد بحث های مهم به کتاب شناسی بشین که از بحث های است علاوه بر جایگاه مؤلف. که خب مثبت به خیلی از این کتاب مثبت به جایگاه مؤلف. اصلا معلف چیز مثباخ و شریعه که منصوب است به حضرت صادق این بحث درش مطرحه مؤلف این کتاب چیز دو محتوای کتاب سه این همانی ها که آیا این کتابی که امروز مثلا به عنوان محاسن برقی را این این کتابی است که احمد ابن محمد ابن خالد نوشته این بقصهاییست که کمتر بهش توجه شده لاقل در مطالعات سنتی البته امروزه خیلی از این کتاب ها مثل تفسیر امان حسن عزگری کتاب سلی تفسیر قومی تفسیر نعمانی اینا بهش مواحص مفصلی در دور محاصبه یا یکی از مواحص مهم در مواحص کلیات علم رجال که تقریبا ازش قفلت شده است مگر باز در روزبار محاصب بحثای جریان شناسی است مراجعه به مسادر رجالی تا قبل از دوره محاصبیه است نزدیک به تقبل فلان شخص ثبه است چرا؟ چون نجاشی گفته است فلان شخص ضعیف است چون نجاشی گفته یه حالتی در حد تقبل البته توجیهاتی برای این تعبدمون داشتیم اینکه اینها متواطر رسیده است از باب خجیهت خبر واحد و از این دو جان. ولی پیش در آمد بحث های رجالی بحث های شناسی است مخت اساس این جریان شناسی ها در قدمای های اصحاب تزقیف و جق و تعدیل های فراوانی هست اصحاب یونس ابن عبدالرحمن فقط به صرف جریان کلامی تزقیف می شونده. یا بسیاری از نزاهایی که بین قومی ها و رقدادی ها هست بر اساس کلامی یا تزقیفاتی که نجاشی و ابن دارند. دارند اینا بر اساس محتوا و وحثای جرهان شناسی فلان مطلب را اولو میداند نجاشی و به طبیعت حال قائلش را زعیف میدونه به همین خاطر از حضرت آقای شو از زنجانه این مطلب شده که تذقیفات قدما باید دوباره بهش نگاشه تعمل بشه به این جرده که خیلی از این تذقیفات نه به خاطر امری معلوموسی که فلان راوی دروغ سریح میگوید فلان راوی گناه کبیره مرتکب میشه نه اینها پیش درآمدش مباحث کلامی و متاسفانه در مباحث رجالی خیلی از اینها پیش توجه نشده به صرف تحقیق نجاشی، تحقیق به شیخ البته نکات پراکنده در کلمات قدمای های اصحاب هست مثلا نزاعات اخبار نزاعات قومی ها و بغدادی ها یا نزاع قومی ها با اصحاب یونو اما این که به صورت منسجم یک سرفصل در مطالعات کلیات علم رجال این بحث مطرح باشه نه و لازم هم هست اگر کسی می خواهد پجوهش رجالی کار آمده باشه باید پیش زمینه ها را نگاه بکن در مورد مفردات خب بحث، نرخ شاهباسی بخث رجالی همین بخث های مفردات علم رجاله خب کارهای مفصل زیاد شده از مسادر اربعه یا خمسه یا سته رجالی یه قدما تا الائی اومن که محجم رجال مرحوم آقای خوری قاموس و رجال مرحوم آقای شوشتری. اما باز چیزی که در خیلی از این مسادر قفلت شده و شاید تنها استثناش در مسادر قاموس و رجال مرحوم آقای و تنقیه خلمقال نامت از در جهات باشه ما در مسادر رجالی فقط دنبال اقوال رجالی هست در حالی که در سه ارتباط وسیقی با خیلی از موضوعات معرفتی داره وحید به وحانی به خصوص اولین کسی است که متفتن این مطلب شده و البته ایشان چون بنای توسیر حد اکسری دارد متمثل به که به این مسادر شده سراغ مسادر روایی رسده ابان ابن عثمان خب این توسیق سریح ندارد اگر از خواب از ازمارش رو بگذاریم کنان خب این را چی کارش بکنم؟ در سندی در... که در کتاب شیخ صدوق اومده ابن عبی عمر گفته از حدسنی جماعتون من مشایخ نام من هم اوام نبن عثمان هاین ها تقبیر شیخ که در مورد موردوان ابن عثمان بکار بود از سندی کتاب روایی بهره برده است در توسیبه یا تو بحث های که اولین بار باز مرحامه و هنگه به ادهانی متفتن این مطلب شده و تعقل قواعد کلی رجالی تو این مورد در ورست که فلانشست به روایاتش فتوا داده شده است یا تو بحث‌های های اعتقادی روایات روایاتو هون سدیدن ما سحلب نزیادی داریم محمد ابن سنانی داریم و افرادی که ما فضل ابن آمر اینها تصدیفات رجالی دارند. مو به صرف تضغیفات رجالی روایات اینها را دور بریزیم چیزی که درگیری اخباریه و غیر اخباریه مرخوم وحید بهبهانی از راه دیگری وارد شد گفت مو یه تضغیفات رجالی داریم ولی مو یه عمل کرده از ها داریم عمل کرده یعنی چیزی که زبان نداره که حرف بزنه که من این آقا ضعیف است یا سبه. اما ما از عمل کرده از خواب یه می سهم. اگر نجاشین میگوید فلان شخص ضعیف است در مقابلش می بینید کلینی صدها روایت از این دارت نکنه میکنه. اگر فلان شخص و شیخ توسی ضعیف می کند می بینیم کتب اربعه پرست از روایات این شخص این عمل کرد از و این عمل کرد نیاز به تحلیل داره و در مباحث مفردات باید به این توجه بشه صرف جرم آوری این که محمد بن سنان را شیخ مفی گفته است منثقات طاحت نجاشی تضغیف کردیم تعال روز جرم و تعدیل حالا بگیم جرم مقدم است یا تعدیل نه مرحوم به رحید به بهانی و من, من طبقه ایشون وارد این بحث های اینگونه نشدم. سراغ مسادر دیگری رفتن برای تعیید توصیل یا تضعیف جرها یا سراغ مسادر تاریخی باید بریم در مباحث مفرداتی خیلی از مباحثی که در, در بده رجالی اجمالش مطرح شده بحث های درگیری های عرض ها این در که مسادر تاریخی بهش توجه شده و ما اگه درست بخواهیم قاهیم درد کنیم بعضی از این اتفاقات را نیازمند رجوع به مسادر تاریخه هستیم یک نمونه شو خدمت را بکنم مرخوم نزراشین در ترجمه خسین ابن سعید و حسن ابن سعید خنشت و طریق ذکر میکنه به کتابای های ایشان. از قول استادش ابن اینا. تاریخ پنجام رو میگه این طریق است. هیچ توضیح خیامه میگه میگه در سال مثلا 301 میگه در ایام ناصر حالا یه اسما ممکن است اشتهار به من اجازه داد خسین ابن سعید سال فلان و بعدم میگه این طریق تاریخ قریبی تاریخ. مراجعه به مسادر تاریخی نشون داد اصلا این سال منطبق بر ایام اون حاکم نیست. مثل این که کسی بگه که من در دیستو بهمن سال 56 مثلا راقه مای دیستو بهمن. ما این یکی بگید این بحث بحث قریبیست تنها بر اساس تاریخ قرابتش واضح میشه و ما متاسفانه سراغ مساده تاریخی نمیدیم یا در بحث انصاب راویان از جمله مسادری که حتما باید بهش مراجعشه مصادره نصب شناسی البته فقط امصاب سادات منظور نیست حضرت آقای زنجانی زیاد این رو تکرار میکردن که مرحوم نجاشی هم در نصب اشخری های اون رو اشتباه شده و برای فهم این که فلان شخص واقعا نصبش افتادگی دارد یا نه تو اشخری ها کتاب تاریخ قوم از سر که خب اکساً بهش مراجعه نبکنه ترها مستری که متفتن این نگاه بوده مرخوم شوشتری در آموصول جاله که از مسادر عدری بهره برده از مسادر تاریخی بهره برده و برای بار اول که کسی مثل ایشون سراغ تاریخ تبری میره سراغ معارف ابن قطعیبه میره و قبلت مراجعه به این حجمت مسادر غیر رجالی در این حجم نده یک مده دیگه در بحث رجالی بحث رجالی بحث تحلیلی است ما تو قبل از دوره وحید بهبهانی روکردمون به مسادر رجالی یه روی سفر و چیز کتب مکتب حیل مرحوم علام حیلی به خصوصه و اطباع مدرسه حیل مثل مدرسه عجب عامل شهید سانی صاحب مدارک صاحب معاله به صرف قول نجاشی تو دو دوره های بعدی تحلیل این داده های رجالی مزرح شده و هنوز که هنوزه نسبت به خیلی از این مباحث جایی ما هنوز رو کرده تحلیلی نداریم اینی که تفاوت پیدا کرده از قول مرحوم نجاشی و ابن قضایری از یک طرف و جناب شیخ توسی از طرف دیگه در جعفر ابن محمد به مالک فضایی مرحوم ابن قضایری و نجاشی میگن که جعال است جعال بزرگترین و بدترین لفظ جرس و تصویز مرحوم شخص سریحا این شخص را توصیق میکنه این سرس به یک تعارض نیست که حالا وارد قواعد تعارض بشین که حالا اهل سنت به خصوص اینجا کار خودشون را خیلی راحت کردن جرس مقدم است بر تعبیل تمام شد و رفت نه این برقص نیازمنده تحلیل مفصل مرحوم نجاشی چه دیده است از این شخص که او را تحسیس میکنه برگه مرحوم نجاشی تعجب میکنه چرا ابو غالب زراری از این شخص جعال نهار روایت میکنه و مرحوم شیخ اگر واقعا اوضاع این شخص در این وضع فاجعه چرا مرحوم شیخ به این سراحت رو توصیح میکنه خب این نیازمند بحثای تعارض جرح و تعدیل خوش نیست این نیازمند بحثای تحلیلیست بیشه شناس البته منظور من از بخش تحلیلی روکد لزومن روکد روکد به بهانی و اطباق و شاگردهی مدرسه نیست موده از دوره بعد از اخباریه یه روکد توسیق حد اکثری پذیر حد اکثری اصانی در باید باش مواجهه تقریبا پذیرش قول اخباری به یه صورت دیگه مرخوم وقید بهبهانی و شاگرداشون تو شما منتر مقال همین مطلب رو زیاد می‌بینید. اینها تحلیلهاشون تحلیله هاشون را اووردن در خدمت توصیق حد اکثری طبیعتا ممکن است خیلی با این نگاه موافق نماشین من چه دلیلی داریم تلاش بکنیم تا شخصی را توصیق بکنیم و چه دلیلی داریم تلاش بکنیم تا روایتی را تصحیح بکنیم کاری که ما در مکتب حلی باش مواجه نیستیم علام حلی به راحتی روایتی را تزقیف میکنه نمیخوام روی کرد حلی را تعیید کنم الان میگم نه مرحولام حلی احساس خطا و گناهی نمی کنه که من مثلا 100 تا روایت 200 تا روایت و که با رو صاحب منتقل چند هزار روایت اینو تضغیف میشه. اصلا احساس هیچ خطا و گناهی نمی کنه اما تو دوره بعدی ما یه پیشفرزی داریم و, سیخ و تحصیح حد اکثر طبیعتا بعضا ممکنه با این روکرد نافق نباشن اما روکرد تحلیلی به مفردات رجالی روکرد قابل قبول تریست نسبت به صرف مراجعه به مصادر رجال توجه به موانع کلامی فرقی هم در جهر و تعدیل باید مورد توجه قرار بگیره که خب نکات خدمات <تصفيق> یه نوشته یه دیگه که بحث بعدی در مورد مواحث سندشناسی <تصفيق> ما مواحث سندشناسی به معنای واقعی قلمی تا قبل از منطق الجماع نداریم مرحوم صاحب معالم در منطق و اولین کسی است که متفنن مباحث سندشناسی میشه به صورت گسترده در بحث سندشناسی ببینید ما اگر بخواهیم بحث رجالی نتیجه بحث بشه علاقه بر بحث‌های مصداق بلفاست که فهمیدم محمد بن سنا سقف بلفاست یا اون را توصیح پوسیت اما بی توجهی به براحساسند شناسه نتیجه بخش نیست در اعتبار سنجی رجوع یک نکته یا مثال رو خدمتت حرف بکنم سندی جستجو کنید در افسار جامعه حادثه نور می‌بینید ابن عبی عمر عنی ابان ابن تقلب نبی عبدالله استاده خب ابن نبی عمه سقه از بلا ریب هم شیخ توصیف کرده است هم نجاشی ابان ابن تغلب را هم سقه از اندال فریقین بدون هیچ شکاره هی. خب این سند به حسب ظاهر صحیح علایی است اما تو بخص سندشناسی تو این سند افتادگی وجود داره ابن عبی عمر نمیتواند ابان ابن تقلیب رو درک کرده باشه بعث های اتصال و انقطاع بعث های تحریف و تسخیف بعث های تعلیق و اذمار که خب، کتاب کافی مرحوم کلینی پرست از تعلیق پرست از تحریف و بیتوجهی به اونها واحی باعث میشه که بحث رجالی مصمر نباشه و این بحث است. حتی تو دوره های اول درزن مرحوم شیط توسی هم در تحضیب تو بحث های سند شناسی اشتباهاتی مرتکب شده که البته مرحومه خواهب منتقل جمعان بهش تذکر. این تذکراتی در این مورد داره یا تو بحث های سند شناسی خب سند سند برقی عن ابن فضال خب ممکن که برقی حالا با تسامح سقه است ابن فضل هم سقه است اما بحث اتصال برقی قومی شگونه با ابن فضل عراقی ارتباط برقرار کرده بخاری در اهل سنت به این مطلب متفقتن بوده و یک شروطی که بر سه حت روزه کرده علاوه بر اینی که طبقه دو راوی باید با هم بخوره شرط درک را هم داره یعنی به صرف اینکه که در یه توزگار نیزیستن برای بخاره کافی نیست نه همون درک کرده باشن خب اون خیلی از سند کاری که داریم این بونه از سند تا یک جای عراقیست و بعد از یه جای قومی میشه خب صرف معاصرت این دو بدون اینکه بگیم خب این دو نفر چگونه توانستن هم دیگره پیدا کنند؟ اجازه است؟ جاده است؟ یا مسافرت اتفاق افتاده؟ یا نمونه که البته خودم این مثال قابله خچام هم؟ خب جناب عبدالعظیم حسنی در زندگی کرده و در... یعنی اواخه و در ری هم از دنیا رفته است در سند مشیخه مرحوم صدوق برقی قومیست این برقی قومی چگونه با عبدالغزیم حسن ارتباط برقرار کرده آیا افتادگی داره یا مکاتبه اتفاق افتاده است یا مسافرتی جناب برقی بری داشته برای صحت سند باید جواب بردی پیدا بکنید و الا صند خالی از تعملی صحت عرض کردن کارهای جدی در این زمینه خیلی کمه تو متاخرین که نداریم اولین کار, کار منتقل جمعانه صاحب معالم بعد از صاحب منتقل جمع پسر ایشون که میشه نوه شهید سانی محقوم شیخ محمد در استقصال اعتبار فی شرح استقصال نکاتی در این زمینه گوزد کرد ولی خب ایشون چون در صدر شرح استفسار هست هر جا سند اقتضا کرده است نکاتی را گوست کرده این که کتاب مستقلی نه ترتیب اصانید مرحوم آقای عبورو جهدی ترتیب اصانید کافی تحذیب خیلی راه بشه در این مورد ایشون هم کتاب اربعه را بگم کتاب سلاسه استفسار بخشی از تحذیبه هم خیلی است که های صد و خسار هم مسادر سندهای مسادر رجالی را و اصانی براش نوشته و خیلی از مواردشون خلالهای موجود تحریف ها تصریف ها را گونست کرده مرخوم آقای تفریزی هم که مرسوعی رجالیشون به همین مهم پرداختن. حضرت آقای شبه هم نوشته های در این زمینه دارن آقای قصد رواده شو بیده هم این دو جلده که ازشون منتشر شده و توی نرمافزار درایت و نور هم توضیحات که از ایشونه توضیح حسانیده مشکله کافی دو جلد خیلی کتاب کافی سندهایی که خلال داره تحویل ها، تصریفا، تخریفا همه را گوشتد کردن یه نکتهی که قفلت ازش شده مسادر در مصادر رجالی خب با سندهای متعددی داریم کتاب حلبی و خب ابراهیم بن هاشم یا کتاب سکونی میبینیم که نجاشی و شیخ که دارن سندشون رو به این کتاب ریت میکنن میگه ابراهیم بن هاشم عن ابي عن النوفل عن این طریق به کتاب راهگشاست برینی که ما در اگر با سندی مواجه شدیم که ابراهیم ابن هاشم بود و انحبید نباشد یا نوفلی در این طریقش نباشد این اونست نمون که این سند ممکن مشکلی داشته باشید کتاب مرخوم آقای از این جهت اون بخش تفصیلی طبقاتی که او آخر داره از این جهت راه پشاف دیدم این کتاب المفید من معجم رجال حدیث آقای خویره که آقای جواهی نمیشه و تلخیص کرده اون بخش های طبقات و سندهای های رجالی را همه را حذ کرده بعضی ها خیلی از این کار تمجید میکردن که بخش رجالی خوب این کرده و زواعد کتاب را تلخیص کرده اینها ها نیست اینها ها بخش های بخش های ما تو متسلط نباشیم بر بحث های سندشناسی بحث مو ما مصمر نیست. در بحث مفردات و سندشناسی یه نکته ای که بخوام دو نکته بخوام خدمت رو عرض بکنم یک در این بر بحث مفردات خصائص روحی افرا که ما روانشناسی علم خصوصیات روحی روانی عالمان در حرف های که میزنن طبیعتا تاثیر گذاره میمونه مدتب است که تو روانشناسی هم خیلی بهش پرداختم که من مقمه های متحری هم یه جایی دارن که فرق از بین در که در روستازاده است و سقیهی که در شهر زندگی یه نمونه یه خدمت رو عرض بکنم در بین معاصرین مرحوم مامقانی صاحب تنگلیخ المقاله و مرحوم آصف نوحسنی افغانستان این دو شخصیت دو, دو تا محیط کاملا متفاوت و زب مرحوم مامقانی در خانواده زبت و تقوی و علم و در محیط نجف با افرادی هم که هشت رو نشت همه هم افراد مقدس رو همایول ایشون به توصیق حد اکثری شخص امامی باشد خواهی سقت چرا؟ ال امامی لا یباهت امامه شیعایی که به ماش دروغ نمیبنده بنده مرخوم آسف مخسنی تو محیط جنگ زندهی کرده دیده نه شیعایانا به خاطر دلار امریکا سر برادر دینش کلا میذاره با کومونی ساخت و باخت میکنه به همین خاطر خیلی از چیزهایی که مرحوم مامقانی اماره یا دلیل توصیل گرفته مرحوم آسف محسنی اصلا اینا رو دلیل نمیدونه یا نه میدونه اینا بخشیش نمیگم حالا همه ولی بخشش به خصائص روحی روانی افراد بنده اونو در بحث تحلیل مفردات نباید از این قفلت کنی گاهی قفلت از این و قفلت از ادبیات هر شخص باید شده تحلیل متحلیل و درستی نبشه یه مطلب دیگه هم در سنت شناسی هم در بحث مفرداته توجه به نسخ خطی است نمونه ها مرحوم شوشتری متفتن این مطلب هست در قاموس رجال به همین خاطر وقتی که مرحوم آمقانی شخصی را توصیق میکنه یا شخصی را وساقتش را ذکنه نمیکنه اینشون میگه نسخه تصیل شده فهرست شیخ این گونه هست نه اونگونه که شما گزارش کرد به همه خاطر سراغ علا رقم این که ده به مرحوم شوشتری نیست که سراغ مسادر متأخر برود چه در فقه چه در رجالششون اصلا متاخرین را اعتنای به شونه میگه رجال ابن داود خلاست ال اقوال حیلی چون نسخ خوبی از مسادر عربعی رجالی را منعکس کردن قابل توجه نمونه هست اسمش رو یادم فراموش کرد تو رجال نجاشی تصده آشو بیدی جامعه مدرسی کهشون البته سقتون را گذاشتن در کروشه خب نسخ نجاشی اصلا سقه ندارد مرحوم تفرشی در نقر رجال میگه من چند تا نسخه دارم از سنده مرحوم استرابادی هم در منحجال آقا میگه که منم چند تا نسخه دارم سقه ندارم. اما همه نسخه های ما نسخه های است. میبینیم هم مرحوم علامه حلی هم مرخوم ابن داود سقه را به کار بردن در مورد و از این جهت قابل توجه و باید نورده. یا تو بخصهای سندشناسی خیلی از مشکلاتی که برای محیجات میشه نسخه ای هست ابن عبی عمر عن ابان ابن تقلب خب این مشکل سازه برای ما ابن عبی عمر ابان ابن تقلب رو درک نکرد خب مراجعه به نسخه دیگر حالا نسخ خود خودمستر یا نسخه عرضی آفی نسخه در عرضش تحضیم مراجعه می بعضی از نسخه معتور کافی اینجا و جای عوان ابن تقلب عوان ابن داره و مراجعه اینا مشکل را حل می که متاسفانه باز هم این مطلب چنده مورد توجه قرار نکنیم مسئله بعدی که باز خیلی مهمه و در هر ستایی محوری که گفتم باید توجه بفرمایید مراجعه به مصادر اهل سنت ما در مطالعات سنتیمون منظورم قدما نیستند مصادره نقل الرجال منهج المقال اینها مراجعه به مصادر اهل سنت نداریم تو دوره‌های متأخرتر یه مراجعه کوچیک داریم اونم به دو تا مصدر خیلی جزئی و مختصر اهل سنت تقریب و تحضیب ابن حجر الکاشف ذهبی که معمولا با علائم اختصاری قب یعنی تقریب و تحضیب و حب زهبی بشه اشاره میکنه خیلی دوتا کتاب کوچیک نه در قدم های مراجعه به مساد رحل سنت زیاد هست مرحوم نجاشی مرحوم شکل زیاد از مساد رحل سنت استفاده میکنه اگر شما سراغ بخش اصحاب حضرت رسول اکرم رجال مرحوم شیخ برید میبینید اکثر مطالبی که مرحوم شیخ در این اصحاب حضرت رسول بوده، برده اینا از مسال رحل سنت حالا تفاوت مباحث کلامی و احتقادیشون سر جاش اما ما در اسم، لقب و کنیه میتونیم از مصادر اهل استفاده کنیم. این شخصی که به عنوان ابو عبدالله فلان معروف شده اسمش چیه؟ مصادر اهل سنت راه گوشو. در مورد سال ولادت، سال وفات که برای طبقه راه می تونه مصادر اهل سنت خیلی به ما کمک کنه بحث طبقه که این از چه کسانی روایت کرد باز مسادر رحل سنت میتونه به ما کمک کنه حتی در بحث جرح و تعدیل از مرحوم شوشتری در قاموس و میگن حضرت آقای زنجانی هم بیمیل به این مطلب میستن که الفاظ ما شهده به لعدا اگر شخصی را به عنوان رافضی در مسادر رحل سنت مطرح بشه و تکذیبش هم به صرف رافضی گریش باشد یا تکذیبی نقل نشده باشه. خواهی نشون داد این شکل دروقو نیست و الا رافضیگری چند گناهی نیست اگر هیچی نه معلوم شد این یه وساقت فلجمرهی داره مرحوم نجاشی به خصوص زیاد متأثر است از مساد رهد سنت تو خیلی از بخشا به گونه که جناب آقای سندت تو این کتاب رجال کلیات رجالی که نوشته یه بخش آخرش اصلا مرخوم نجاش را سنی زده میدونه البته خب حرف ایشون من نمیخوام تایید بکنم اما مخوام میگم دعب قدمای اصحاب ما مسادر رجالیم خیلی مسادر است چار پنج جلب که بیشتر نیست کشیست، نجاشی، فهرست شیخ، رجال خیلی نقضی که جزبید در خیلی از یا مصال و وفات نداریم طبقه شن را نمیدونیم به خصوص شما اصحاب حضرت صادق علیه سلام رجال منخوم شیخ رو بینید مثل یک لیست حضور و غیابه. یک مش اس بدون هیچ خصوصیتی اصلا ما طبقه شن را درست نمیدونیم سال تولد، سال وفات، اس، کنیه این اصلا معاصره کی بوده؟ از چه کسانی رواد کرده؟ و مسادر اهل سنت از این جد راه کشاه مرحوم شوشتری زیاد طرق مسادر اهل سنت البته بحث های کلامی به جای خودش طبیعتا مونه میخوایم تقلید اهل سنت بکنیم و تفقیف بکنیم اعلام شیعی را یا بر اساس مبانی اونها بخوایم مب... مسادرمون را جهد و تعدید بکنیم ولی تو خیلی از مباحث میتونیم از اینها کمک بکنیم این بخش مفرداتی در بخص کلیا باز مسادر اهل سنت راه پوشه دو نمونه رو خدمتتون نحل بکنم ببینید مرحوم شیخ در رجال حضرت صادقه بخش در رجالش در اصحاب حضرت صادق علیه السلامش تعبیر رو دارد اصندعن تو اصحاب حضرت واقع هم چند بار و تو برد بیشتر تو اصحاب حضرت صادق علیه السلام. موارد متعدد دارد از ندعن. از دوره سفویه اله یومنا هازا این بحث هست دارید از ندعنه از ندعنه خب این زمیر به چی برمیگرده گرده و بحث های خیلی بحث ما به ابن عقده برگردوندن به این در مقام متحه در مقام زمه یچی باره معنای مثبت و منفی نداره در حال که مراجعه به مصادر اهل سنت ببینیم تعبیر خیلی تعبیر مرام و معناش واضح تر میشه اسند عن یعنی این که این راوی که در این اصحاب حضرت صادق آمده است از حضرت صادق به صورت مسند نقل کرده مثلا مسند یعنی چه یعنی مثل روات سكونی سكونی روایتش این که آن آبی عبدالله، آن آبی، آن آبای، آن رسول الله. این دیگه نه معناهای مثبت داره، معناهای منفی داره، زمیرش معلوم معناش واضحه. داخل خمراتج هم کن ما حق خوبیم که معناهای محاسبه ما ولش پیدا نشادی. و خیلی آیه دیگه، با که اصلا معناهای مطرحش فهمیدم، و نه از واژگان توصیف کرده تنه. یا یک محاسبه دیگه تو بحث از حابه سه حمایه خوان یعنی چه؟ رساله های متعددی در مورد از خواب اجمع نوشته شده حالا بعضا جداخونه بعضا در کلیات علم رجال بعضا در مسادر رجالی در زیل عبانب یا دیگر از خواب اجمع که این سه حمایه سه خوان یعنی چه؟ مسادر اهل سنت که مراجعه میکنیم معنای واضحی صحقه هن ابن عباس معنای واضحی داره و خب خیلی از اصطلاحات در بین رجالیون اهل سنت و رجالیون شیعه مشترکه ما خیلی از کلماتی که رجالیون اهل رجالیون امامی به کار بردن چه در جهد چه در تعدیل واجهگاه است که اهل سنت هم به کار بردن البته بعضا نتغییرات کوچیکی داره ولی این گونه نیست که کاملا دیگانه و در فضای متفاوت باشه این هم یه البته تو مسادر اهل سنت به خصوص مسادر رجالی یه چیزی که هست مسادر اهل سنت مسادر مفصل و برای مراجعات بار اول گمراه کنند چون شما تقریبا هیچ شخصیتی در این ثونه پیدا نمیکنید مگر اینکه این یا یک تضعیفی داره و از اون طرف کسی یا پیدا نمیکنید مگر اینکه این یه مطلقی داره و هر مخاطر پیدا کردن اینکه نظر اهل در مورد فلان راوی چیست این ضعیف است یا ضعیف نیست به این راحتی اون نیست که ما مثلا سیار اعلام نوبل جایزه ادبی را بذارم جلوی نمیمونه مثلا سیار اعلام نوبله هر کسی را که ببینید, ببینید هم مهد دارد همزن و, هم و باید حواسمون به ادبیات اهل سنت گونه های کتابی اهل سنت بعضا فقط در مورد سقاط دارن مینویسم خب تو این به کتاب های سقاط بکنیم فقط ما تخمین می‌بینیم در حالی که شاید برآیند نظر اهل سنت نباشد این شخص قد اما شخصی این را توثیق کرده من میارم و اینه که ما بعضا تو مواخذ کلاممون می‌خوام گویای اهل سنتی را تضعیف کنیم من فراق مستری و من نه فلان ابن حبان این را تضعیف کرده بله این قولی در ضعف این شخص نقل شده و چم نیستن شاده اکثریت قریب به اتفاق روات اهل سنت یه تزقیفی در موردشون نقشده حتی بخاری اما این نظر اهل سنت نیست و این روکرد علمی نیست بقیه محور سومی که باز مسادر اهل سنت خیلی راه بشاست برای ما تو بحث سنت شناسی مخ خیلی از اسانید سنی که در مصادر شیعی وارد شده منظورم از اص... اسادر سنی که وارد مصادر اسانید سنی که وارد مصادر شیعه ابن عمر عن رسول الله ابن عباس عن رسول الله تو امالی و عمالی توصی زیاد میبینید ابی هریره عن رسول الله تو چه فواید اثر خذا زیاد میبینید که نقل های صحابه از سند سنی مو چون آشنایی به خصوص دو دوره متأخر با اصانید سنی نداریم به همین خاطر تحریفات زیادی در اصانید اهل سنتی که در مسادر شیعه هست وجود دارد. حتی شما وسائل و شیعه میبینید که نقلی دارید از شیخ خسال شیخ توسی می کند و سندی که نخ کرده سند رسال سند تحریف شده است. یه مثال خدمت رو ارض بکنم اون روایت معروف که زن دیوانه زنا کرد و این را وردن بهش پیش عمر گفت حد بر ایجاره کنن امیرمانو علیه السلام اونجا حاضر دن فرموند اما علیه انتر نمیدونی که حد از مجنون ساقطه تو وسائل شی هست ابن ابن زبیان بعد پاورقی این وسائل آل البیت خود است ابن عبی زبیان خب این ابن زبیان است یا عبی زبیان بعد تو مصادر فقه خب این بحثه تو بحث های حدود و تعزیرات اینها هست میشه خب این ابن زبیان ابن زبیان کیست یونس ابن زبیان یونس ابن زبیان چه پس شده این خطابی ملعونی بوده بعد حالا بحث این که خب این که یونوس ابن زبیان که از اصحاب حضرت سادر علیه السلامه این چی جوره میتونه ناجرای زمان عمر را نقل بکنه از این رواحات ارسال داره در حالی که مراجعه به مسادر اهل سنت نشون نه اصلا ما توی واده دیگری هستیم این ابن زبیان نیست عبی زبیان هست در این سند ابن عباسی از قلم افتاده ابو زبیان راوی معروفی از ابن عباس مراجعه دو گونه مراجعه میتونیم در ساده راه سنت توی موارد داشته باشیم یک خود متن این روایت خب ماجرای روزگار و عمد معروف این معروفیست به حسد ظاهر این روایت زن ای را آوردن پیش خلیفه امیر المومنین را حاضر بودن خود این تو مستدرک حاکم این عن عدیزبیان عن ابن عرباز. یک کار دیگه که می که کرد برای فهمیدن تحریفات که مرحوم قفاری در تصریحاتش از این استفاده کرده و یک کتابیم خدمت رو عرض میکنم در این زمینه مراجعه به مسادر رجالی تو مسادر رجالی اهل سنت یه از محسناتی که مسادر رجالی اهل سنت داره نیست است که شما هر شخصی را اول اسم و لغب اگر الگاب متعددی دارد میکنید بعد برمیگه روائن مشایخ این شخص را معرفی میکنه که این شخص مثلا ده نفر، از ده نفر داره نها تحضیب و کرما و اعلام تاریخ اسلام زهبی تحضیب و تحضیب اینا همون روانهو حالا از این شخصیت که ابو حریر مثلا حسن بحثی از این کیان نقل میکنن؟ یه نیست بلندالایی بر اساس مساده ارائه میکنن مراجعه تو مثلا ما تو این سندی که هست ابن عباسی هست این عنوان را مویقین داریم که دیگه ابن عباس تحریف نشده مراجعه میکنین به مشایخ ابن عباس و کسانی که از ابن عباس نقل کردن میبینیم آیا با این سند خانی دارد یا نه مرحوم قطاری از این راه زیاد استفاده کرده که نسخه هست در تصفیحات شد در نسخه هست جریر در نسخه هست حریز خب مراجعه کرده از آیا جریر عن ابن عباس است یا حریز ان ابن عباس مراجعه کرده از مثلا به دهزی بلکمال مرخوم قفاری در ابن عباس خب لیست بلند. به کسانی که از ابن عباس دارن نقل میکنن دیده دیده نه خریزی توش نیست. اما جریر ابن مثلا عثمانی دارد از ابن عباس نقل میکنه این بر اساس بر کمال جریر است. نه حریز یک کتاب این آقای نجار نوشته که البته فقط جلد اولش شام چوب شده قلمشو خب قلم تندیست و همین هم شاید باعث شد که بقیه این مجلداتش را کسی رقبت به چاپ نداشته باشه به اسم تسعیق و تراس و نرجالی. ایشون اینشون بیسی تا سندی که در مثال تحذیب فقیر من لایحظور کافی هست و نشون داده تحریفاتش رو بر اساس همین روی کرد که مثلا ابن عباسی هست ببینم تو مشایخش اصلا یه شخصی هست یا روایت مشابهش را رو در مسادر اهل سنت نگاه بکنند و بر اساس اون اینها را تصدیف کند تو دوره معاصر به خصوص در تصدیف مسادر روایی از این شیوه خیلی استفاده شده اما هنوز مراجعه به مسادر اهل سنت حالا شاید به خاطر بیعتقادیه به سنی ها حالا به هر دلیلی که نشنیستیم چندان رایج نیست و این باعث خسرانه که من خودمون را محروم میکنیم از مسادر اهل سنت به خصوص وقتی که میبینیم بزرگانی مثل معخوم عاملی محدث نوری به خاطر ناشنایی و مسادر رجالی اهل سنت اشتباهات مرتکب شده نامو در تصدیه آثارمون در فهم آثار ما به هر چیز نیاد باشد. از داید مراجعه بکنید. و سنالله و سیده محمد و آلده اما مال ما باید کنید شما از که بعضاً توی مبارس و, مبارس و, و این ببینید این نشطر رو باید گفتم. من منکر خباسه در مصادر نیستم حتی در سال تولد و وفات جواصت ها گاهی تا اونجا هم پیش میره نمونهش خدمت تو عرض بکنم در مورد سال تولد حضرت صدیقه کبراه آیا 5 سال قبل از بعثت است یا 5 سال بعد از بعثت مصادر شیعی 5 سال بعد از بعثت مصادر اهل سنت 5 سال قبل از بعثت چرا چون قرار است انکار بشود فضیلت حضرت زهرا که نطفه حضرت زهرا از میوهی بود که در شبه معراج پیغمبر بردادن خب قبل از به قبل از به که می معراجی بکار نه بود. یا حتی بیاد ف... در مورد فضیلت روز عاشورا حدیث جعل بکنه ما ممکن این نیستن که یک خباستی حتی در جزئی ترین مسائل ممکنه ولی تو همون مسادر اهل سنت هم العارض هم اینجا ممکنه است که خواصتی نفس با ادعاوتی باطل نمیشه ولی چون آخرش حق و حقیقت خودش نشونه می توانیم استفاده کنیم ولی خب باید متفنن باشیم و هم قادر در مسئله خیلی از مسائل جزئیات حوادث کربلا. می میبینیم که تو مصادر اهل سنت در مورد حوادث کرد برای اتفاقات گزارش های و مفصل هری نسبت به مسادرشه مسادر کوهنه مقایسه کافی نه مسادر متخری که خیلی و نه مرمونم که تبرید مسادر خوبی در اختیار داشته و خیلی مسادر دیگه باید سراغش بریم و البته به قول امروزی ها یه چشمون باز باشد یه چشمون بازد این فکر نکنیم که واقعا دارن با بدون پیشفرس های کلامی نه پیشفرس های کلامی همزور که برای مدخیله و ما نمیتونیم مناقب دشمنان عقل بید رو پذیریم اونا هم نسبت به پذیرش مناقب عقل بید و حداوتی دارن. اصلا توجه مسلمین به بحث اثنان از کی شروع شم شده؟ شما بعضی از مستشده که مثلا بحث اثنان محدود رو که چیزایی از صحابه اول شده و که به بعدی همون چیزا از پیغنبر نمشد یعنی که از قابلی رو شما این این که از اصلا توجه تو بین احل سنت یه دو طبقه اول خب اونجا خرابه واقعا همینطوره به همین خاطر بحث زیاده هست که این روایت موقوف است یا مرفوع موقوف یعنی که مال خود صحابی است یعنی یعنی اینکه این مال پیغمبره چون خب ما کتابت نداریم و البته تو بیش از ما که تلاش برای تصحیح در محل همین تلاش دارن که تصحیح ولی در بین شی بازی زر اوضاع بهتره از اون وقتی که سند مطرح می شود ما داریم تا براش عرضه بکنیم به همین خاطر ما یه سه مفصلی که در مصادر شیعی داریم عرضه روایات پیغمبر بر اهل بیت یا قول مشاهیر اهل سنت نمیاد بگید به امام صادق علیه السلام که از پیغمبر نقل میکنم یه سنی ها میگن حالا برای من مهم نیست این رو از پیغمبر نقل میکنن یا قول مثلا خلیفه هست عمر است. از این جهت مو اشکالاتی که مستشریقین نسبت به اسانی مطرح میکنن که البته بیشتر نگاهشون به سنت های اهل سنته از این جهت اوضاعی ما بهتره و کمتر هرچند خب یه بخشی که میگم سنت های سونی تو وارد بشه تون دو طبقه اول مشکلات اساسی داره. علاوه بر اینه که قول صحابی به پیغمبر و قول پیغمبر به صحابی نسبت داده میشه متون تون دوره اول بحث اسرائیلیات داریم یعنی که احبار هر روز جمعه قبل از کتبه های نما جمعه میومده از کورا تا کتبه بنی اسرائیل میکنه و ما تو دوره بعدی نمونه های زیادی داریم که چیزی که در جایی به کعبال احبار نسبت داده شده است در جای دیگه این به پیغمبر و صحابی نسبت داده شده یا عوارض عدم کتابات و ممنوعیت به کتابات و چاره ایم ازش نتعنی نمیشه صورت مسئله بکنی مشکلی هست ولی میگم که شیعه اوضاش از این جهت کمی بهتر است به این جهت که ما عرضه روایات بر حجت داریم چیزی که اهل سنت ندارن یعنی ما حجیت امام صادق حجیت تعبدی داریم نسبت بهشون تو اهل سنت احمد حنبله تو هم احمد حنبل هم علا رقم خوب رویتش مبینیم خب با بخاری اونام علا رقم خوب رویتش با ابن عبی شیبه على رقم خوب تعارض داره و اونجا خودعیت تعبدی و اما درست نمیشه این مشکله هست چی؟ تفاوت زیادی نه. نه ما به نظر در این نبود که با اخباری ها را کنار زدم مبانی مورد پذیرش قرار گرفت. حالا به یه صورت دیگری تو اخباری ها گفتند گفتن کتوب اربعه صحیحون جناب وحیده برانه گفت الان فی سهل یا سهلون نتیجه می شود پذیرش خیلی زیادی از روایات سهل ابنزیا در کتوب اربعه و اینی که متوسیق ما اینقدر ایش قواعد توصیقات آمز وحیق و شاگردان وحی اله یوم نهاده حتی محکوم آقای خویی توصیق مشایخ نداشی توصیق راویان تفسیر عمی توصیق راویان کامل و زیار کرده برگشت اینا همه بر اساس است که ما تمایل به توصیق دارید اینقدر خوی اسمش برداشتی بسکش بینه اون درگیری که بود که می گفتن شما تطبع ندارید فقط تحذیب مراجعه می کنید به شهید سانی می به صاحب مداره میگن که تو ندارید نداری تو اینا مراجعه نمی کنی خب دیگه امروزه به وسائلشیه مراجعه ها از این نمونه ها یعنی خیلی و دعوا که سر منبر و صندلی که نبود اون یه بحث علمی است این که ما داریم که دعوای بد اینی بود و هم وحید به, به همانی شخصیت وزینی هم صاحب حدایب شخصیت وزینی نظاه هایی خب بچه طلبه ها سر هم میزنن و ابد ده تو سر <تصفيق> که هم ها دو میزنن همون تحریف تماکان و مولکرد اخباری رو داره دیگه جان الان همون مولکرد هایی با وزیده چرا اگر کار نپذیرین چه اتفاق خب ببینید این حالا اینی که چرا متمایل شدیم به پذیرش حد اکثری اخباری ها این حرف را زیاد میزنن البته اصولها یاد نمیاد تصریفی دارن یا ندارن خود عملchardشون میگه که نا که هر چیزی در شمول شریعه محسوب شما، له شریعه شریعت هر چیزی شاهد من کتاب و سنت خوب وقتی که این بشه شما مجبورید چه روایتی براش پیدا کنید این اجبار شما را به تغییرش حد اکثر را احتمالاً این مبنای اخبار اخبارها روش خیلیام قفشاری میکنه کلمات اخباریون به صورت بولد و پررنگی مده تو کلمات علمای مکتر خیلی دنیست چونها باور نداشتن و به این خاطر است که راحت میتوند پرو پروه روایات و رو تصعیف بخوند و اصلا احساس گناه ها اشتباهی نکنه در حال که اگه, اگه کسی روی کرد رو کردشین بشه که مهر قضیه ای هر مسئله ای را باید یه چیز از کتاب یا سنت حاله کتاب که تجلیفش معلوم است شمولیت چندانی نداره در حقیقت یعنی باید برم سراغ روایات کسی که این پذیرت مجبوره هموگا برمیگرده به یک پیش من باید هر چی که میخوام داشته باشم یک روایتی برای اون روایتی ضعیف پیدا بکنم بله و ظاهرا این بین اهل سنت هم اه، طرفدارای زیادی داره همه نیست که ابن دنیا تو موضوعات مختلف کتاب روایی می نویسه اینی که کسی تو موضوعات مختلف می نویسه یعنی در حقیقت دنبال پاسخ و به سوالاتی است که سآل کنندگان از حکم شرقی از روایتش دارن بزن ولی این که هی در مورد فلان تب روایی نویشتن و خیلی مسائل ظاهرن در اساس این روی کرده نه یه روی کرده تفننی، محصف، تفریح و, و این یعنیم که در برای محتوانهش نیم که ما خیلی به پ... یعنی کشف حدیرت خیلی وقتا برای ما مهم نیست ما دنبال یک معرفت، دنبال جای پای محکم نیستیم دنبال اقناع این دنبال پاسوک جدلی هستیم نه، حالا اونی که معتقد مرحان... است که هر چیزی در کتاب و سنت معتقده هست سنتی که من رو برسونه بره خب نه از اون طرف هم این و معناش هست که خدا و عمه ما رو که حیران و سرگردان رها نکردن این اینا که دست به دست هم خب من حالا چی چی دارم این خود همین حرف یعنی این که عقل احتمالا براشوند یعنی داده های عقل رو قیلی وقتی نمیدن خب یعنی خب. اگر من نیازخان باید حتما از کانال ره میترمی میشه یک خب عقل چی؟ یک عقل که دوشاره هوا با حوث میشه و عقل که یعنی ای عقل رو بکنیم تو سرش تو وقتی کنیم تو سرش حالا دستمون خالی میشه چی رو بیاریمش بلا؟ خب نقله ما... ولو نه ببینید ما... ما یه اینی که داریم اه... نگاه خیلی اینها تو مسائل شرعیات، تو مسائل شرعیات طبیعتاً سراغ ندارم اگر ما بخوان این را تصریع بدهیم به همه موضوعا یعنی حتی موضوع بخوان بگیم که آیا استفاده از انرژی هستهی در درمان بیماری‌های های درست است یا نه اگر بخوایم به این تصریح بدهیم بله این موجه میشه که ما بخواهیم بزنیم تو سر دریافت های عقلی اما به نظر رسید خیلی از اخباری و که سل جمله عقل و شعور و برایتی داشتن منظورشون از توجهی به عقل این نیست که ما حتی در این جایا استفاده از انرژی هستهی در درمان بیماری های سنبولان میگه ما در, در مسائل شریعتمون نمیتوانیم ولی این را، این قید را بی توجهی بش کردیم و بعد گفتون که نه منظورش نیست که در همه مسائل خواهد کسی در خونه مسائل میگه عملا، چه بگه چه نگید از این مستان، ببینید ما که همتون مسائل شریعتم باید دستمون دو دوامن شریعتمون مطابق اونجایی که واقعاً دستم میرسه من اگر دستم به یک پوسیده اینجا سیده آیا این تناقل پوسیده رو بگیرم اونجایی که واقعا به من رو در واقع بانع نمی‌کنه که این واقعاً قابل استناده نعرفت زایی نمی کنه برای من من حالا بیام یک روی کرد همت اکسری رو اتخاظ میکنم برای اینکه دستم رو از دوان شریعت درسته؟ آیا من ظاهر بخوا... تایید بگیرید نه من مرداشت البته من به نظر هم اخباری ها یه اینی که هست که من خواند تحصیح حد سری یه حرفی که میزنن بیعتنائی به رجال نه به خاطر تحصیح حد سری. به نظر اخباری ها رجال ناکارا یعنی ما قول مثلا کلینی یک تر از از این زن از اون قول رجالی اون هم زن حرف اخباری این که این زن اقواست از اون زن نه, هر... نه این که من هرچه کلینی بگوید میپذیرم یا هرچه در کتب رواب ای آمد اصنی پذیرم با شما تو حداغق اصلا یه نمیدید که هر روایت پوسید ایران نه می بینید میشی به اعتبار سنه ولی میگید که این زن رجالی چندان طریق معتبری نیست اگر قرار بزن ماشد قول کلا این زن اقواست یعنی اونجوری دیگه من یا نابوزیرم خوشکمانه و با قدما باشم از این طریق درستش بکنم یا مثل وقت مرمون راید و احتمالی پیان اون رو بذارم که ما یه سر دوائدی درست میکنم که نتیجهش باز بشه همون با. اونتا دو راهه ولی نتیجهش میگم که اونها میگه که قول این اعبواست اما ای که هرچه او بگوید درست نه هست به این خاطر خب رد روایات کتوب اعبواه را هم ما هم توی آسال اخباریه میبین البته اه، اهل سنه چون مثلا بحثی به اسم تقیه ندارن راحت حکم جعل میکنه ما تو شیعه و بحث تقیه داریم به این خاطر مرخون سهاده یه روا... خیلی از روایتی که نمازه حمله به تقییه میکنه حکمه به جعلش نمازه چرا چون میگهد که حکمه به تقیه کردن اقل و معونه از, از حکمه به جعل کردن این در حقیقت رد, رد روایته در نتیجه فرق نمیکنه خب میگم که می میدم دامن دواریات رو از پسید جل در امان دانسته میگه البته تو حکم به جل یه تحکمی میخواهد یه قطعیت و اطمینانی میخواهد که خب کار سخت میشه به همین خاطر تو احل سنت که زیاد حکم به جل هست ابن جوزی با این مقام شامخی که دارد خیلی رد ها برش نمشه شده چرا؟ به این سند گفتید من این دیگه برای سراغ دارم شیعه اگر میخواست وارد دو جب شد هم این مشکله رو پیدا شد چون ابن قضائری و ابن ولی دو تا علمه ابن ولید میگه که زید نرسی را هم دانی جعل کرد ابن عبی عمرو، حرفت چیست، ابن عبی نه. یعنی آخرش همون تناز، اختلاف و درگیره ها بود وارده، بخصی میشبیم که درگیری کمتر در مکر، یک اتمینان ندارم تقیه اقل و معونتن است، خب بار من میخواهم رد کنم خب، چیزی که اقل و معونتن است متوسک میشم چیزه جواب دیپلماتیک دادنشون نمیدون یه طورو گفتن میگنشون فلسفه باعث تا با رو بدی ولی این تاکید رو گروه کرده اونها چون تصدیق میکنن که حکم وجع کار امامان فنس و واقعا تو خیلی از مصادر تو خیلی از نمونه هایی که دو طرف حکم به علی بودن، ان کردند من بهتر میفهمم یا صدو خوک به جعلی بگم اه یکیان که تو صدوق صدوخست مفتوز ندرست از اون طرف به همین خاطر تو دوره های بعدی هم تو همون دوره اولیش هم نمیشه خوکم قاتل کرد چرا موارد چیزی بشم که بزرگانم هم علا رقم جلالتشون علا نزدیکیشون به اصل صدور اختلاف دارم هم وارد محدود نمیشه ما که برای مهم نیست، این حالا دروغی باشه امام نگفته باشد، امام گفته تا منظور چیز دیگه باشه من این روایت رو دور میزنم از فرایند استن و خودم در جیر اون نزاه های بی حاصل نمی کنه نه با این خوبه تقریقی هم اونجا بود چون خوبه تقریقی هم بازی، یعنی سایه شده اصل، است. درمیلیت هم سکنه بگم این یعنی باز دروق کرده، پسیلش هم به خصوص مرحوم شیخ توسی تا دلتون بخواد حمله به تغییر کرد و این شیخ خود تا افت گذار است تا امروز نمیشه به روی کرده شیخ را نایده بگیریم و تأثیر گذارش به همون خاطر بعد شیخ توسی خیلی مرحوم صدوب در من لایخ در قدم پذیرش روایات در تعارض روایات یکی دو مورد حرف تقییه زده است. چیزهای مختلف زیاد گفته اختلاف احوال، اختلاف اشخاص مجمله نست و ظاهر